مرا مهر سیه چشمانز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان استین و دیگرگون نخواهد شد رقی بازارها فرمود و جای آشتی نگذاشت مگر راه سهرخیزان سوی گردون نخواهد شد مرا روز عزل کاری به جز رندی نفرمودند هران قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد خدا را محتسب ما را به فریاد دفنه بخش که ساز شر از این افثانه بی غانون نخواهد شد مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم کنارو بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساغی دلا کی شود کارت اگر اکنون نخواهد شد مشویی دید نقش قمز لوح سینه حافظ که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد